اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین روز پنجشنبه برای امواتمون انشاءالله یه برسه با ذکر سلواتی بر محمد و آل محمد سلواتی بر محمد و آل محمد, محمد. و یجب و فیها تقدیم الخطبتین على حمد الله تعالى به الحمد الحمدلله و السناء علیه به ما و فی وجوب الثناء زيادتا على الحمد نظرون و عبارت و و من هم المسنف و فی عنه نعم هو موجودن في الخطب من قولت عنه نوی و آلهی علیه و علیه مسلامه الا انها تشتمل و على زیادتن علا زیادتن الا اقل الواجبه ما از دیروز وارد بحث نمازهای واجب غیر از نمازهای یومیه که قبلا گفتیم ببینیم چه نمازهای واجبی داریم اولیش نماز جمعه هست که در اینجا مطرح شد جلسی قبل در مورد وقتش صحبت شد و گفتیم به جای نماز ظهر. در مورد وقتش هم دیدید دیگه یه اختلافکی هست. اما دو تا خطبه باید بر نماز جمعه دورچتی مقدم بشود. گفتیم درکت. دو خطبه مقدم بر این درکت هست. البته بعضی نمازها رو داریم که خطبه داره دو تا خطبه داره ولی بعد از نمازه. مثل نمازه؟ چه نمازی خطبه داره بعد از نماز؟ ایده فتر ها ایدن. نماز خود خطبهاش بعد از خود نمازه اما این مقدمه حالا ببینیم مشتمل بر چی باید باشه خطبه ببینیم خطبه این نیست که امام جمعه رفت اون جلو هرچی گفت گفت نه این یه واجباتی داره حد و حدودی داره حساب کتابی داره باید خطبه ها مشتمل بر همین باشه که الان میشماریم. حالا اضافه بر اون واجب بله حرفای زیادی هم گفته میشه. ایرادی نداره ولی حداقل باید این واجبات رو داشته باشه. ببینیم. اگر این واجبات رو حساب کنید شاید در از دو دقیقه بشه خطبه خوند. اگر خالص فقط همون واجبات رو داشته باشید. ولی خب این نیست دیگه. معمولا اضافات دارند و میبینید یه دفعه بیست دقیقه نیم ساعت هر خطبه بعضا شاید طول بکشه و یجب و فیها در نماز جمعه واجب است تقدیم الخطبت مقدم کردن دو خطبه بگید اول بخونیم بعد خطبه ها رو میخونیم نمیشه معاویه گفته بود نماز جمعه رو این جمعه کار داریم چهارشنبه نماز جمعه رو بخونیم و بعد بریم به کاران برسیم جالبش نه که مردم هم قبول کرد با دیدن این چیزها و همین مسائل بود که امراض میگفت که حکومت بکن مشکلی پیدا نخواهی کرد میبینید که عرب ها دیگه جامعه اسلامی همینه قزده و اینا میبینید این همه جنایت و اینا ولی هیچ آب از آب تکونس نمیخوره اگر کمک به اسرائیلم هم نکنن باز خوبه یجب و ها تقدیم الخطبتین المجتملتین اله حمد الله دارستانی روی حمد الله اجزاش رو میخوایم بشماریم حمد خدا اگه میخوایید ببینید همش رو سنائه بر خدا یعنی توصیف و مده و وصف خداوند و صلات علی نبی و آلهی علیه مسلام فرق نمی کنه هر دو خطبه باید مشتمل بر اینها باشه چهارمیش وعظ بله صلوات نفرسیم حالا میرین حالا برسید ول باید موعظه بکنه چهار پنجمیش قرائت سوره خفیفه ای یه سوره کوچیکی بخونه تمام پس اجزای خطبه تعین این 5 تا چیزی که الان خوندیم حالا وارد بشیم آقای محمدی تذکر دادم اسم نبی و آل نبی اومد یه سلوات نفرستیم جفا هست خب مشتمل بر حمد الله به خاطر همین تو همه این ها اولش میبینید خطبه ها رو چی میگن الحمدالله الحمدالله رو میگن چرا؟ چون لفظ الحمدالله هم موضوعیت داره لذا میگه به سیغت الحمدالله یه سیغت دیگری بیارید مثلا بگید که انا حامدان لله نمیشه. احمد الله، احمد ربی، یادتونه الفی اولش اونید اونجا رو؟ آره ابن مالك اح... گفت احمد الله خیر مالک. اون فایده نداره. تو نماز جمعه باید بگی الحمد لله. ولی خب خطبا معمولا خیلی دیازامش رو زیاد میکنن. از خطبه های حضرت استفاده میکنن. الحمدلله لذی فتر الخلائق به قدرته نشد ریاحه به رحمته یا امثال اینها رو اضافه میکنه. و سنا علاق. البته اون اضافاتش میتونه از باب سناء باشه. سنا عرض کردم. یعنی مد کردن خداوند، توصیف خداوند. مثلا همین فتر الخلائق به قدرته. قدرت خدا اینقدر هست که خلائق رو خلق کرد فتره. نشر ریاحه به رحمته الحمدلله لذیر فلان فلان اینها همش سنای خداست اون اضافاتش ها الحمدللهش میشه هم اضافاتش میشه سنای بر خدا پس انشالله یه روز امام جمعه شدید تو دهاتتون یا جایی که هستید انشالله اینا رو داشته باشید نه نه امام جمعه اینها کلا مسئولیت تو نظام جمهوری اسلامی خود سخته وقتی مسئول میشی باید همه اون شهدا، جانبازان، خانواده شهدا، پدر شهدا، مادر شهید، برادر شهید، خواهر شهید، بچه شهید، همینا جز شد تاش. کوتاهی کنی با اینا سر و کار داری. دار سخت. من خودم خب خود بلدم نیستم یعنی امام جمعه من باید از شنبه تا جمعه باید مشغول باشی. کار مردم رو راه بندازی، به مشکلات برسی، با مسئولین در بیافتی. اگه زندگی مردم رو ببینی خطبه ها آماده کنی یعنی یه دونه خطبه نماز جمعه خوندن فقط کار اون لحظه امام جمعه است بقیارش که نمیشه برد صرف کارهای دیگه فقط بیاد خطبه بخونه و خداحافظ چون این که فایده نداره لذا همچین مسئولیت مسئولیتی رو من و امسال من نمی‌تونی منجام بدیم ما یادمه یه بار جلسه های الله خوشبخت بودیم در مورد سیاست جمهوری صحبت شد که سیاست جمهوری چه خصوصیت داشته باشه گفت ریاست جمهوری باید 24 ساعته فقط بدوه خودشون گفت کف امسال من نمیتونه می کار رو بکن فقط باید صبح تا شب و شب تا صبح مشغول حل کردن مشکلات کشور باشه مشغول اجرایات باشه این مرمومر و کسی که اینجوری نمیتونه کار بکنه نه باید بیار اتفاقا بعدش همین آقای روحانی رای بود که صبح تا شب و شب تا صبح همش اصلا من مرمومش مشغول چه کاری هست تنبلی تم، و تمپروری و کجا بوده دنیا و این چیز ها اینا خیلی خیلی بد شد دیدید دیگه نه چشم مشکلاتش هنوز هم حل نمیشه. خیلی خوبب بر ولی برای شما هم ممکن حالا در بین شما کسی باشه که منجره بشه خوبه ولی یادتون باشه اماجمه هرچی وزیر هر هرچی شدی الان همین نمند هر شدید باید به فکر این مسئولیت که سنگین هم هست دارید بیفتید من تنها مسئولیت عمرم کللا از اول الان همین مسئول ادبیات مدرسه اونم به زور ویلمون نمییم. گفته ما فردا یه طلبه جلو من رو بگیره بگه آقا تو مسئول ادبیات بودی من چرا ادبیات هم ضعیف شد توی این مدرسه چه جوابی بدیم؟ میمونون دی مسئولیت خود زحمت می ولی در قبالش هم بگه اگر مسئولیت پذیرفتید و تونستید زحمت بکشید کارت انجام بیم اون دیگه ثوابش رو دیگه نمیشه حساب کرد خیلی شما. اگر یه نفر ببینه واقعا میتونه و کسی دیگه هم نیست اون برش واجب عینی میشه دیگه باید بپذیره چاره اینیست دیگه آره. خب و سناه علیه سناه بر خداوند متعال به ما سناه سنا چی بگه این لفظ خاصی دارد یا نه؟ میگه نه به ما سناه سناه رو چی معنی کرده بودیم قبلا دعا میگفتیم دعا کنه به ما سناه هرچی دوست داره یا به ذهنش میدسه اینه آره وفی... حالا لغت سنه ها رو نگاه کنیم ببینید کدوم ایناست دوست داشتن یا به ذهن رسیدن وفی وجوب سنه زیادتن علالحمده نظران خب از این وفی وجوب سنه آقای شایده داره بحث میکنه در مورد این که اصلا سنه به عنوان جزء دوم در, نما... در خطبه واجب باشد میگه من توش بحث دارم اونم اینه در وجوب سنه زیادتن بر هم هم دو گفتیم دیگه سناء دیگه این واجب بودنش، حالا مشکلی نداره، بگید، اتفاقا خوبم هست. ولی وجوبش معلوم نیست. فیه نظرون، نظر و اشکالی توش هست. و عبارت و کسیرن و منهم مصنف و فزکرا، خود مصنف در ذکرا رو عبارت شو ببینید و عبارت افراد بسیاری از فوقه ها رو هم ببینید خالیتون آنها هستش. از وجوب سنا خالیه. یعنی در واجبات خطبهش گفتن حمد، سلات، وضو و اینا. دیگه سنا رو نگفتن. هست؟ بله، کتاب ذکر. نه دیدم کتابخونه شما نمی‌دونم ذکر باشه یا نه. تو مختصر هستی دیگه. همون که کتابونه در مختصر رو باز کنید اگه فقه داشته باشن. م... نمیدونم متاسفانه این کتابکن های مدرسه ها مشکلش اینه که کتابهاش رو خودش پول نداره بره بخره لذ کتابهاش از این معبر جمع شده خیلی ناتراز میشه نامیزون میشه می‌بینید بینید کتاب های عجیب و غریبی دارن ولی یه کافی درست حسابی ندارن. چرا چون اینو هیچکی نداده پووللم نداشتم بخرن ولی اون چه داده کتاب های عجیب و غریبی داد این ممکن ذکررا نداشته باش در حال که باید مدرسه که شرحه لومه حتما حتما کتاب شهید اول باید اونجا آماده باشه که طلبه بره مراجعه کن. خالیتان انها یعنی این عبارت و چسیرن چه مصنف در ذکره یکی از همون خالی خالیست از وجوب سنا. یعنی فقه ها وجوب سنا رو نگفتن. وقتی نگفتن ما باید ببینیم دلیل حسابی اگه داریم بگیم اگه نداریم مشکله اولا دلیل نداریم ثانیان هم نگفتن پس چرا داری واجبش میکنی بر من نعم این نعم استدراجه یعنی میگه خی... البته خیلی بی دلیل هم نیستی ما موجودون یعنی این وجود سنا یا خود سنا بگیم بهتره هوه یعنی سنا موجودون فل خطابل. من قولت عنه نبیه و آلهی علیه و علیه مسلام در خطبه نماز جمعه که از وجود مقدس پیغمبر عزیزمون نقل شده و اهل بیت علیهم السلام در اونجا گفتن که حضرت علاوه بر حمد سنا هم داشتن خب این الان به عنوان دلیل شما رو راضی و قانع میکنه که تو رسالتون بنویسید امام جمعه واجب است سنا کند چرا ممکنه شما بگید که آقا فعل معصوم علیه السلام اعم از وجوب و مستحب حالا شاید مباش هم باشه هست معصوم داریم فعل مباش منطقی اینجا خب چون بلکه صناعی خداوینا هم هست ما میدونیم مستحبه. جواز جوازه برمان ام دیگه یعنی کار حرامی نیست ولی ما میدونیم مستحب هست یا واجب حالا وقتی یه چیزی اعم شد که نمیشه رو خاصش استدلال کرد بگید پس واجب است نمیشه که نعم حالا ببینیم خودش چی میگه این بخون بخون توم... توان بشه بخونم بعد سؤالت شو نعم هوا موجودون این سنا در خطبه های منقوله از پیغمبر بزرگوارم و آلهی البته آله پیغمبر نماز جمعه رو به اونا ندادن که به اهل بیت پیغمبر نماز جمعه ندادن که از لحظه وفات پیغمبر از صقیفه دیگه امور دین رو دیگران سریع قاپیدن قاپیدن، نذاشتن فقط چند سال خلافت حضرت هست و چند ماه خلافت ما هم حسن علیه السلام دیگه فکر میکنم نماز جمعه خانده باشم مگر شاید حالا تو حکومت معمون یادم نیست که مثلا امام رضا رو به خاطر ولایت احتیه نماز جمعه ای داده باشن خونده باشه اون نمیدونه اونو باید بگردید نماز باران و نماز عید هم نماز گفت برو بخون بردید که نگار مشتری زیادتر از من شد گفت بگید برگرده امنیت جانی نداره من خودم میخونم این مطلب هست. پس آلهی گویا فقط همون امام حسن و امام علیه علیه, مسلام. علیه, علیه مسلام هستش. خب در اونها سنا داریم فترر خلاقه به قدرته و نشرر ریاه های به و امثال اینها رو فراوان هم داریم. الا اشکال شهید ثانی بر این دلیل رو دقت کنید. این اشکالی که شما گفتید نیست. که گفتم اهمه. اونو نمیگه. اگه اونو میگفت خیلی فنی بود. یه چیز دیگه میگه. ببینید متوجه میشید در توضیح اولم. میگه الا این که این خطبه منقوله تشتمل و علا زیادتن علا اقل الواجبه این خطبه ها مشتمل بر سناه مثلا شاید یه رب فقط سناه هست خب وقتی سناه که از خطبه ها نرف شده خیلی ده دقیقه فقط سناه خداوند مطابق هست پس این دلیل بر وجوب اصل سناه نمی شود متوجه شدی چرا چطور؟ زیاده وجوب حالا زمان چه نمیگه میگه مقدار سنایی که از اونها به ما رسیده زیاده خب طبعا زمانش زیاد شده دیگه طبعا بیانش طول کشیده این یه بار دیگه من قشن خالصش رو میگم ببینید اشکال شهید سانی چیه شهید سانی میگه آقا دلیلی بر وجوب سنا در خطبه نداریم فقه ها هم همچین چیزی رو نگفتن بله یه دلیلی داریم اونم اینه که از حضرت و از امامان بزرگ بار علیه مسلم روای... اون روایتی که خطبه رو بر رسونده و گفته توش سنا هست اشکال این استدلال اینه که اون سنایی که در اونها هست خیلی بیشتر از اون مقدار سناییه که بر ما میتونست واجب بشه مثلا هم دیگه دونه الله تمام سنا هم میتونستی به که الله و عالمون قادرون همین شد. در حال که این یه رب طول می چشن. چون صناعه در خطبه ها فراوان زیاده لذا دلیل بر وجوب اصل صناعه نمی تونه باشه باید باید باید با حالا بگید زیاده. یعنی همه اش واجبه از اینجا شروع کنیم حرف خوبیه از همین حرف زد 16 شروع کنیم بگیم آقا تو چیکار داری؟ به تو چه؟ سنا تو خطبه ها اومده میگیم بله میخیله خب پس بگو واجبه حالا اینجا همینجا این هم اضافه کنم نهیلو چرا الان بگیم سنا واجبه چون تو خطبه ها اومده خطبه های حضرت اومده اسمش اسمشو چی میگفتن ای میگفت ای, ای گفتن ها باری شد دار تحصی اونها گفتن ما هم همین رو انجام میدیم اینجا با محتوی سنا کار نداریم گفتیم خود سنا کار نداریم محتو محتوی رو کاری نداریم ما ما میگیم اصل سنا واجبه چرا؟ چون پیغمبر سنا رو در خودگاه ها اوورد سمید. خیلی خوب پس تأثیر رو میشه مطرح کرد سوالش اینجاست شهید سانی اشکالش چیه؟ میگه سناهایی که وارد شده از هزرات سناهای طولانیه لذا نمیتونه دلیل باشه به نظر اشکالی نیستیم چی که اصلا دیجا بودشوند. یه که در وضو به اولا تعبیرت توی خود قشنگ کن تعبیر بگو تعبیر میتونست این نباشه خب از من چیز نکنید ادب از بی ادبا یاد بگیرید از کسایی که توند برخورد میکنن شما اونجوری برخورد نکن خب این اصل اما چرا اینجا جا نداشتون بگه مشکل در وجود بشه دیگه خب همین نه نه پس متاجعه نشدید ببینید همه رو یه بار دیگه دقت کنید شهیدسانی نمیگه ت... سنای زیاد واجب نیست. شهیدسانی میگه چون سنایی که وارد شده زیاده پس معلوم میشه اصلا اصل سنا واجب نیست حتی یه چلمش هم واجب نیست خب همینا دارم میگم میگم این رو یه خود روش فکر کنیم این فنیه فنی ترین بحث امروز ما همین جاشه. یه ذره روش باسیید. چرا شهید ثانی میگه چون سنا زیاد است یعنی اگر این سنایش وارد شده از پیامبر دو چلمه بود میگفتیم سنا واجب شد با تأثیر این حرفات ولی چون زیاده معلوم میشه که اصلا سنا واجب نیست اینو ربط دادنش یه ذره کار بخواد یه مقدمه دیگه بهتون بگم از اون استفاده کنید اون مقدمه اینه سناه فراوان، سناه طولانی، سناه زیاد در خطبه ها قطعاً واجب نیست. اجماع داریم که واجب نیست. خب حالا با این دو تا مقدمه از پیغمبر سناه وارد شده. سناهی که در خطبه های پیغمبر وارد شده خیلی طولانیه و ما میدونیم سناه طولانی هم واجب نیست. این سه تا جمله رو چه ناره هم بزنید بگید فسر شهید سانی درسته. این سه تا رو ببینید چه استفاده می‌کنی ازش؟ را ببین که واجب نیستش یادراست. آره دیگه مستفاده. ازش نتیجه بگیریم که پس اصل سنا واجب نیست. حتی یه کلمه‌اش هم بگی مثلا الله علیمون، الله عظیم و اینش هم واجب نیست. پس فعل معصوب سنای تحصیل هستش. ما می‌گیم سنای تحصیل اعتماد داریم که واجب نیستش. پس کل این سنا زیاد واجب نیست مستحب باشه. خب این که مدعا که نگفتی. شد دیگه چیزی نگفتیم. همون حرف رو دوباره تکرار کردی دیگه. ولی خب یه بویی ازش می اومد که ببینید خودم میگم دقت کنید اگر خطبه یه نقل شده از پیغمبر عزیزمون دلیل بر وجوب هست میگیم باشه. ما رو قبول میکنیم زود باش میخوایم تو رساله من بنویسیم سنا واجب هست خیلو, خیلو. که از پیامبر وارد شده تأثی کنیم بهش بگیم واجب است. سنای چقدی واجب میشه صنای چسیر دیگه صنای طولانی، چون اون صنای که وارد شده شما نمیتونید بگید از پیغمبر سنایی که وارد شده کوتاهش واجبه یه آید اینا تازه آوردن چرا رو؟ اون خالی, خالی باشه ها خیلی خوبه شبو شما نمیتونید بگید صناع طولانی چه از پیامبر وارد شده ما یک کلمهش رو واجب بکنیم میگیم نه دیگه اون یه یک که وارد نشده فعل پیغمبر صناع طولانی وارد شده اگه میخوایی به اون تاثیر کنی و اونو دلیل بگیری باید بگی صناع طولانی واجب است در حالی که اون مقدمه سبب هم. در حالی که اجماع داریم و یقین داریم که صناع طولانی در خطبه ها واجب نیست. پس استدلال از اصلش میپره. آره اصلا. یا کل صناع یروبی رو باید واجب کنید. چون فعل پیغمبر همینه. یا اصلا کلن صرف نظر کنید. ما مجبوریم کلن صرف نظر کنید. تو اینو دیگه نوشتن داره. اینو حتما باید بنویسید. چون توضیح نداده. چیه من؟ حالا سوالاتون رو بپرسید. از کجا میفهمم سنا واجب هست یا نه؟ خب همین رو داریم میبرم بیاس میکنیم دیگه. ببین چهلامه ها هیچی نداره. دل دلیلی هم نداریم. غیر از همون فعل پیغمبر. فعل پیغمبر هم سنای طولانی است. آیا میتونه اصل سنا رو یا بگو مسمای سنا گفتن اینجوری. گفتن بگو مسمای سنا. همچین یه جمله کوچولو هم بگی که سنا حاصل بشه اسم سنا سیده کنه. آیا واجب میکنه مسمای سنا رو اون فعل پیغمبر؟ میگه نه چون اگه بخواد واجب کنه اون صناع یروبی واجب میشه که ما هم یقین داریم واجب نیست پس اونجا یه توضیح بنویسید بنویسید اونجایی کفته الا انها تشتمل و علا زیادتن اقلل واجب بنویسید ما چون یقین داریم که مقدار زائد واجب نیست که اونو عرض کردم دیگه اجماع داریم مثلا یقین داریم مقدار زائد واجب نیست آرادی که مقدار زیادی واجب نیست پس دلالت فعل پیغمبر بزرگوار بر وجوب مسمای صناع معلوم نیست معلوم نیست آره دیگه دلالتش بر اون که دیگه معلوم نیست چون این حالا بخواد اینش هم اضافه کن چون فعل پیانبر صنای کسیر بود نه صنای مصمه اون نشد اون یقین داره واجب نیست از مصمه شو با اون نمیتونید واجب کنیم. حالا تعبیه رو خودتون باز عبارت بهتر لگی میخواید بنویسید در وجود. حالا الان حرف شهید سانی رو دوباره بخوایم خودمونم بررسی کنیم اینجاش میگم فنی بعدی خودمون رو خود کار کن. این حرف شهید سانی. حالا در مورد حرف شهید سانی آیا قافل باشی حرفی داره بگو. خب ابزارتیه بگم تأسیسی رو میکنی. آها عبارت دیگه حرف شهید سانی رو بخواید. تای اسبطره که استحباب برداشت میشه یا آ هم پیام پرانکار رو انجام دادن از برای استفاب برداشت, برداشت میشه اگر میخوایم وجود برداشت بشه و در خب در واقع یه اشاره به همون مطلبی که من عرض کردم چه ببینید وقتی ما فعل پیغمبر برای از ضوم رو می بینیم و میخوایم تاثیر کنیم اولا این وجودوب یا استحبابش معلوم نیست. فکر چه میکن این اشکال من بهتر بود از اشکال شهید سای؟ شهیدصان اینو میگفت خیلی فندیتب گفتیم ما شاید شهیدسانی از این ترسیده چه بگه بابا جان تأسی کنیم یعنی وجوب بگیریم ازش در حالی که تأسیای قبلی هم معمولا استحباب بود دیگه یادتون هست مثلا پیغمبر عزیزمون میرفتن جای دور موقع تخلی ها رو تواضعانه واجبش نکردیم که اینجا هم میتونست بر استحباب باشه حالا نمی دونم هر حال این مطلب هست نکته های قافله باشیم همینه که میگه اصلا تو تأسیه ها ما اصروبر استحباب بگیریم حرف بدی نیست یا این که بگیم حداقل یا قدر متعقن همینه وقتی پیغمه رزیزم یک کار رو انجام میدن اگر عبادی باشه استحبابش استفاده میشه اگر غیر عبادی باشه ممکن استحباب یا عباهش استفاده بشه اینم هست اشکال دیگری به مطلب دارید رو این فکر کنید صنای پیغمبر طولانی هست شهید سانی میگه چون میدونیم صنای طولانی واجب نیست پس است وجوب صنا هم از این نمیشه استفاده کرد با صرف و نظر از اون اشکال بنده من به نظر می رسه که اگر از اون اشکال بنده که فعل پیغمبر عامه از وجوب است از اون صرف نظر کنیم چرا می شه یعنی اشکال شهید سانی وارد است چرا به خاطر این علما اجماع دارن که صناع طولانی واجب نیست. یه واجب نیست. خب در که پیغمبر انجام داده. و ما میدونیم که پیغمبر پیغمبر دیگه. یعنی صناع و اینها رو میخواد انجام بده بر حد اقل واجب که اکتفا نمیپنه که پیغمبر بزرگوار. لذا میگیم آقا این فعل پیغمبر داله بر وجوب اقل ل. واجب یا مسمای سنا قطعا هست اضافه شو پیغمبر خودشون گفتن اجماع داریم واجب نیست خیر خوب واجب نیست ولی حداقلش دیگه واجب هست چون پیغمبر این کار رو انجام داده لذا اشکال شهیدسانی به نظرم وارد نباشه اون اشکالی که بندرس کردم اون وارده این وارد مست. حالا چون الحمدلله رو جداگانه داریم حمد خدا سنا رو اگر همده خدا رو جایز بدانیم به عنوان سنا باید به نیت سنا بگیرد یا یه لفظ دیگری بیاره که بهتر باشه مثلا اینالله علی منحکیم اینالله علا کلیش های این قدیر وصف خدا دیگه. لذا با اشکال شهیدسانی من به نظرم میرسه که نه نمیشه این دلو رد کرد خیلی خوب این یه بحث فنی بود من جای شما باشم این ترمی کار رو بکنید دیگر انصافا یه مقاله یه صفحه ای در این مورد میشه نوشت بعد نگاه کنید ببین روایت داره نداره بعد خودی دللا رو بعدا سی کنید کلام علما رو ذکرها رو بعدا کنید ببینید یه تخته یه صفحه قشن درست شده ازش اینا انجام بدید حیف این ترم دو دیگه اینا مستحب اکید هست یعنی ترک کنید انگار از آن اقامه رو تو نمازاتون بدید ترج میکارید خیلی خوب میشه چالابید چیز بود. بله بله. این چا این ثروت یه ناسخ فاسدی دارم. بود. گفتم؟ یهو تالی فاسد. تالی فاسد. اگر هر فعل پیغمبر رو بخوایم داخل بحث وجود بگیریم این شد بعضی از احکام ها متنافی بذس به مثلا تو حجد داشتینیق بر گاهی اوقات به صورت کوکوب حج میکنن روی از دور خونه خود, خود را توف می کردنن و از که پیاده این کار میکردن. با اینکه میگم هر فعل پیامبر حتی حدداقات یه پیامبری که حداه بر فجهه پی کردن بستری دو تا باجه داشته باشیم یکی درست یکی پیاده یکی, یکی سوار رو از کو تاففی داده درست ما هم, ما هم, بخاطر ما هم گفتیم کرد فعل پییان بر بر وجود نیست. طالب بر به بر مباح بالمعنى اعظم جواز بالمعنى ممکن واجب باشه مستحب باشه یا همین مباح باشه حرام نیست یعنی فعل پیغمبر دال برین که حرام نیست اینجا هم اشکال بنده همین بود اشکال بنده این بود که سنایی که تو خطبه پیغمبر وارد شده اعظم از وجوب و استحبابه نمیشه وجوب تشکیستان اگر از اون اشکال گفتم صرف نظر کنید بریم تو مبای خود شهید سانی هم دوباره اشکال کردم بنده فالخ این این کورا انجام بده تو موابسه انجام بدید استدلال اینجوری یاد بگیرید با هم تمرین کنید مخصوصا تو مکاسه بشه شیخ دیگه فقط باید استدلال کنید سو بدهلش همین باید <تصفح> رو اسبوت بکنید که صناعه زیاده بر هم نیازه همین الاهنده ها داشته باشه دراز نه نه همین صوتو باید یه بار گوش کنی آره آره تو واسه بعدی اونو دیگه ولش کن آره فلاح فلاح. آره واجب بعدی در خطبه یعنی جزء بعدی خطبه اینه و الصلاه علی نبی و آلهی علیه السلام الله. اللهم صل علی محمد که جمعه وقتی خطبه رو میخونم میگن ثم الصلاه و سلام علی خير خلقه محمد و آلهی و فلان و میاد دونه دونه اسم میبره حالا اون تفصیلا اسم میبره لازم نیست ولی خب من کارو میکنم قشنگ بازش میکنم بهترم ها موضوعیت داره؟ لفظ خاصی میگه بله بله باید به لفظ سلات باشه به لفظ سلات, بلش بلش سلات. یعنی بگه سمه از سلات و از سلام و علی خیر خلقه اینجوری این کلمه این صلات رو باید بکر فقط از روایتش باید بررسی کنیم ببینیم خود کلمه از سلات موضوعیت داره یا مشتقاتش هم میشه مثلا بگه که اصلی و اصل ما خیر خیل خلقه. این کافیه چون اصلی از سلات دیگه این کافی هست یا نه؟ دوید اون از روایت برداشت میشه اون دیگه از رومت فقیه نمیتونیم استفاده کنیم و یقره ها به ما شا امنا نسب قرین میکند همراه میکند اون سلات را به آنچه که میخواهد از نسبتها شاعه یعنی هرچی اون خطیب دوست داره میخواد مثلا میگن سمه سلاتو و سلامو میبینین؟ سلام سلام و مثلا تهیات همش رو به اون سلات اضافه میکنه خیر خل... آن هی نمیدونم و آل المعصومین الطیبین تاهرین همه اینها همون هست که نسبت میده اینم خوبه چون اینجا صيغه نگفتین میشه استقاله کرد که میشه مشتقاتم آخه گفتن لفظ صلات ممکنه خصوصیت داشته باشه ببین اینها رو الان شما دارید. از متن شهید ثانی استفاده میکنید در حالی که متن فقیه این چشش رو نداره ازش ما این استفاده ها رو بکنیم استفاده رو میکنیم بعدا روایات رو میبینیم میبینیم اون قبول نداره یه علت این که من باز اصرا دارم که کاش خودمت روایات رو میوردیم فقه روایی میداشتیم همینه شما از محط فقی حق اطلاقیری نداری حق اصالت و عموم نداری حق این استفاده ای الفاظ رو نداری خوب به چه دردی میخوره فقط از این حیث که کلام علما رو بشناسیم از این حیث لازم داریم شدیداً هم لازم داریم پس می‌خونیم حالا که تو مرتب فقها هستیم خوبم می‌خونیم ولی خودتون جبران کنید دیگه روایت رو بیارید بررسی تو فقه خودتون خیلی خوب دیگه حالا چون فنیه شو و عقب گذاشتیم بریه شو دیگه این مقدار سریع‌تر میخونم. سوالاتون اگه ضروری نبود دیگه باشه پس نسب دارستن نسبت ها نسبت که به اهل بیت میدیم و مثالش هم عرض کردم ولوعظ چهارمین جزء از خطبه باید وعظ باشه دیدید تو خطبه ها میگن عباد الله اوسی و نفسی به تقوی الله و نظم امر و فلان اینا همون شه. تو موعظه میکنه ولوعظ وسیعته به تقوی الله حتما الهی. ول حس علت تاعه اتی الله مردم رو تحریج کنه برنجیختن هست یعنی برنجیختن بر طاعت و تحذیر من معصیت الله من المعصیه و اخترار به دنیا معصیت یعنی نافرمانی خدا کردن و اخترار فریب خوردن به دنیا دنیا ما رو به فریب داد دیدید یه شهید یا حضرت امیر خواندم سر نماز بودید هیچ کدوم نبود ان دنیا وقت و سن واشغلتنا و از تحوتنا دنیا ما رو فریب داد آره تفسیر ناقوس بزنید تو کتابا آره تو نرم افزار جستجو کنید بیان حضرت تو تفسیر زنج ناقوس این رو اشاره دارن اختیار به دنیا فریب خوردن بودی اختیار به دنیا و ما شاكل ازالک امثال این دیگه مثلا نظم امركم هیچ چیز تو هم مایه هاست دیگه حالا جالب حضرت همینه تو اون لحظات آخر زندگیشون اوسی کما به تقوی الله و نظم امریکم خیلی جالبه در اون لحظات آخر نظم امر رو البته باید حواستون باشه ببینید نظم در اونجا یعنی چی؟ <تصفح> مگه مثلا حضرت میگه که آره مثلا خونه رو مرتب کنید <تصفح> کتاباتون رو جایی درست بذارید مجرور این نیست <تصفح> نظم امریکم ممکنه اشاره به این باشه که در موقعی که در باید در طاعت خدا باشی، باید در ساعت خدا باشی. موقعی که باید در خواب باشی، باید در خواب باشی. موقعی که باید، این همه چیز جای خودش. منظور این شاید باشه، حالا باید ببینید دیگه. ولا یت اینو لهو لفظون این موعظه لفظ خاصی متعین نیست. و یجزی مصما، همین کتا هم بگید که اتقالله تمام شد. پس یه وقت به زور شما رو گفتنها امام جمعه نداریم امروز امام جمعه موقت باش okay. پیدید تا اینجا کار چی باید بگیم؟ باید بگیم که بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین اینه اون رب العالمینش هم اضافی بود بعدش سنا هم اله احتیاط خواستی بکنیم بگیم که نالله الا شیء اینقدیر مثلا بعدش اللهم صلی على محمد و آل محمد این هم صلبات بعد و معوضش هم که اتق الله عباد الله این هم از این آخرش هم یه سوره ناعت اناک الکاسر رو میخونید تمام شد میشینید رو صندلی دوباره خود بعدی هم همین میگه نماز جمعه رو سی اونا دیگه واجب نیست که اونا اجزاش نیست بله نماز رو اون وقت که هیچی دیگه شما میدازن بیدون خب نه اتفاقاً اصل حکمتش تو همون جهاشه اینا شرعا لازمه که صحیح باشه ولی اصل حکمتش تو همون حرفایی چه باید خطیب بگه خیلی خوب فیجفی آجان یوجزی مسماه یعنی همین مسماهه و از بیاد کافیه فیجفی اتیالله همین یه دونه اتیالله بگی کافیه او اتکل لا. لا کافی و نهوه مثلا او عبد الله لا مثلا چی نکنید مثلا اوامر خدا رو زیر پا نذارید معصیت نکنید همینا کافی و یحتمل و وجوب الحس على الطاعه و زجر عن المعصيه ممکن هست که احتمال داره که ما واجب بدانیم حس بر طاعت را حس گفتم یعنی بلنگیختن بر طاعت یعنی بیم که ایوناس اتی الله انشات اینش واجب باشه پس بر این موضوع واجبه حال باز لفظ خاصی نداره و زجر و زجره انل مسیح زج یعنی باز گذاشتن زج یادتون باشه یعنی باز گذاشتند بله توی مدرسه طلبه ها دیدم توی یکی از مدارس قم دیدم نوشته بود که یه حدیث رو ترجمه کرده بود عز جرل مسیعه عز جر مسیعه بل به احسان به منظور عز جر ال مسی یعنی آدم بد رو اون چیزی که به تو بدی کرده رو عز جر به با خوبی دیگه حالا اون کلمه چیه بل احسان یا بل مثلا اینا دیدم ترجمه کرده گفته بود که موسی را زجر بده شکنجش بکن با خوبی چه بهش میکنی از روز زجر عربی باز بدار طرف نگاه کرد دیده چه معنی خوبی شکنجه بده از این باز بدار کسی که بهت بدی میکنه اگه هر روز یه شخصی سر خیابون بهت فش میده وقتی ملوث رد میشی تو هم نداری بهش فش بدی اونو باز بدار با یه خوبی یه روز میشه یه شکلات بده بگو خدا خیلی میبینی دیگه از فردن تا یه سلام بهش بده دیگه کار نمید <تصفيق> حالا اینجا هم زج خب قشنگ تره ولی امام اونو نمیگه اینجا اون یه جای دیگه هست اون اشالله تو آره. و یه وجود وجوب الحس الاتاه و زجر ان الماسیه لتاسی چرا؟ چون تاسی کنیم پیغمبر اینجوری فرموده شیش بله امیر المومنی حالا احتمالا از پیغمبرم باشه دیگه. ل تاسی تاثیر به پیغمبر بزرگوارمون. حالا اینجا واقعا باید شهیدسانی برای ما اینو توضیح میداد که تاثیر چطور حالا همش استحقاقی بود الان وجود دارید میگید؟ این یه مقدار جای کار داره. تاثیر قبلا گفتیم دیگه. از چی میاد؟ حروف اصلیش چیه؟ عصبه. ولکم فی رسول الله اسبته یعنی الگوگیری، تاثیر الگوگیری. شما یه میانبار در فهم لغات عربی اینه که منش یاد نمیاد تأثیر یعنی چی؟ خب تأثیر حروف هستیش اصفه اینا اصفه گرفتن معانی ابواب را هم باید بلد باشه تفعال یعنی یه چیزی رو اخص کردن اصفه عکس کردن من طور اصفه خودم اخص میکنم و قراعت صورتن خفیفته یه صوره خفیفه قصیره کوسر صوره قولو الله هر چی آره میخورن دیگه آو خفیفه یا سباج یه صورت سباج بر نداری یه دفعه بگی آخر آخر خطبه بغله رو شروع کن آو آیتن یه آیم میشه که اینو انجام نمیدن معمولا آیتن تام متلفا البت آیت البته آیه تام متلفا باشه دیگه علاوه اینکه قال موسا نه اونان چی میگن مثلا پس این آیه آره مثلا بگم که زالکن کتاب خب بگم زالکن کتاب چی؟ این متل الفایده نیست که بگو که مردم استفاده کنم لظامه که که تامت الفایده آیه تامال فایده باشه به ان تجمعه منن مستقلا یعتد دو به یه معنای مستقلی که بهش اعتداد بشود مثلا آیه قرآن این باشه تو این همه آیه قرآن داریم که یوسب به هلله محفظ سماواته و محفظ عرز آشان یا آیت هم من فا... فایدهش هم کامل اینو بگیه ابن نداره اما به این که مثلا مدهامتان <تصفح> خب بگهنه <بیانی> چی مدهامتان <تصفح> خودش میگه اینو مثال میزنه اینو تامن فایده نیست من وعدن حالا وعدهی توش باشه وعده او وعد هر وقت وعده و وعد رو جدا کردن یعنی منظورشون از وعده وعده به خیر وعید وعده به شره ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجرون غير ممنون مثلا این وعده اما ان الذين كفروا لهم عذابون شدید این وعیده اینا خوبه میبینید تاامل فایده ام هست متددم به هم هست مهمه او حجمن یه حجمی توش باشه حالا این حجم اعظم از حجوی فقهی مثلا میگید که مثلا میبینید تو جامعه دزدی زیاد شده میخونید و سارق و سارقت و, و فقت و اهدیه هما الان یه حکم تامور فاعده هم هست خیلی هم خوبه میبینید زنان عوضب الله زیاد شده از زانیت و از زانی فجر دو هما فعله اینها رو میخونه. یا حکم غیرفقی باشه ازا هوییتون مثلا به تحییتن فهیوب و احسن منها و امثال اینها اتفاقا خطیب اون خطابه خوب اگر داشته باشه میتونه اینها رو متناسب انتخاب کنه سوریه احسانه آره مثلا آره. بله دیگه موارد متعدد هست او قسرتن تدخلوفی مقتزلها الان مقتزای حال این مخاطبین این که یه ای گفته بشه مثلا ارز کردم مثلا آره دیگه نهی که خیلی <تصفيق> بود یکی بود یکی نه بود آره دیگه همین از الان آیات قرآن رو داریم میگیم <تصفيق> تو خود قرآن از اون قصه ها مثلا میبینه که جریان جریان سهر و این چیزها تو جامعه الان ممکنه یا از جهت عقیدتی مشکل دارن میتونی جریان رو سهره رو بگیم ارقی از سهره تو ساجدین که اینجا داریم البته خودش الان مثال خوار زد اون ها یه جوری باشه که یه قصه تام باشه. خب واسه یه آیه، آره. این قصه من توی یه آیه ی قصه باشه، حکایت، قصه من یادم نمیاد توی آیه ی قصه ای رو گفته باشه. مثلا شاید حالا نمیدونم سوره فیل مثلا ترمی هم به جاراتم مسیج حالا چوا داریم منظور از قصه ولی یه قصه شا... معمولا شامل چندین آیه میشه نمیدونم چهجوری منظور از قصه یه قصه قرآنی باشه که روش از الفاظ قرآن هم چون خیلی قصه قرآنی به روایت کام نه بابا آیه رو الان نخونین خطبه باطل میشه باید آیه قرآن باشه بخونه قصه بخونه به عنوان نه نه نه این منظور خود آیاتشه خب حالا این قصه است می‌خونم قصه معمولا تو یه آیه جان میشه. حالا این نمیدونم هم چند تا آیه شاید مشکل نداشته باشه یعنی به جای یه آیه پنج تا آیه میخوایم که یه قصه مثلا قتل اصحاب از هابل اخطود انار زات الوقد مثلا اینا رو بخونه اینها شامل یه حکایت اخطود هم هست دیگه تات خلافی مقتزل حال این آیه داخل در مقتضای حال هست یعنی با خوندن این اون شنمده میگه عجب خیلی هم الان مناسب حال ما بود اقتضای حال ما همین رو میخاست این اینجالا مختزای حال هم تو هم بحث بلاغت و اینا براتون توضیح دادیشو یعنی حال مخاطب مثلا اون حال مخاطب یه جوری هستش که شما قصه حضرت یوسف رو باید بگی حال مخاطب یه جوری هستش که قصه مثلا سهره رو باید بگی اقتضای حال اونها اینو میخواد منم اینو میگم هست قصه یوسف حالا دیگه اون ب... میگم مقتضای حال دیگه شما ببین خانم ها اون چه جوری هن... همه رو نگاه کن طبغ مقتضای ها حالا یجزی مثل و مدهامتانه مدهام چرا مجزی نیست؟ این شما بگید؟ تو امتحان اگه اومد گفتن مدهامتان چرا در خطبه مجزی نیست؟, نیست؟ من باشم میگم نه چون این معنی تامه ندارستم آیه تامه فایده نیست وز, و... وز گفتی؟ یا وعد؟ وعد, وعد نه این اصلا تامه نیست چون مدهامتان اصلا مفرده محتدا خبر نیست که. میدونیم مطامبتان چیه؟ با، با آره منیش. نه نه. از جهت میدونید چیه؟ اگه گفتید. اگه گفتید چیه؟ مد. بعد ها یعنی چی؟ خب. این همش یه کلمه مود و ها و اینا همهش یک کلم اصلا دو تا چیه مدهامه یست ها برای شنبه اینو بازش کنید این یه دونه رو بازش کنید این از جد سرفی چیه اگر از اطلاعات سرفی خودتون نتونید اینو حلش کنید معلوم شه سرف ساده رو خوب نخوندید سرف ساده نخوندید همچون دیگه دانش سرف رو خوب نه؟ اول از سهلاتو رو این؟ اینم کافی نیست چرا؟ آره آه درست دارستانی چون این تامل فایده نیست یا بگو تامل فایده هست ساهران ساجد افتادن ولی معتدام به نیست یعنی صاحرین به سجده افتادن خب چی؟ بلدی. یعنی قبل و بعدش رو نگفته باشی این به درد نمیخوره به نیست پس این چون معتدام به نیست قبلی چون تامل فایده نیست اعتداد یعنی اعتنال کردن بهش اعتنال نمیشه این هم از آخرین جزء خطبه تا گفتیم حالا بگیم سراغه نه اتفاقا برعکس و یجب و فیهما واجباتش این قبلی ها رو طبق این توضیح که الان میده قبلی ها رو هم اجزا بگیم بگیم خطبه اجزایش پنجتاست آهای باشدنی یه اه بار بگو ببینم حفظ شدیم این تا رو این پنجتا رو کلام بگفتیم آه. اجزای خطبه رو من نگاه کن با هم بگیم کمک کنیم اولیش دو بود الحمدالله بعدیش سنا بود که اختلافی بود سلوات بود وعظ بود معزه آخریش هم سوره خفیفه همین شد شدیم خیلی خوب اما واجباتش چیه واجباتش رو ببینید متوجه میشید منظورش چیه میگه و یجب و ما انیه تو خطبه ها باید نیت کنید همیشون. یعنی وقتی میخواید خطبه رو بخونید بگید خطبه های نماز جمعه رو می خونم تو خطبه قربتان لله عبادت هم هستی فی خطبه تای دیگه آه. نه نه هنوز به نماز نرسیدیم ما هنوز به نماز نرسیدیم ول عربیه این هایی هم که گفتیم این واجبات رو این اجزا رو باید عربی بگید یعنی نمیتون بگید که ستایش می مر را خب با شد نکنه یعنی اون اجزای خطبه رو بل عربی بگید روی پس العربیه بنویس همین اجزاها و الا خطبه رو لازم نیست برید تو دهات خودتون ایوه الناس این السو یونه یهلند من القزه امریکال الجنایتکاری یعنی بفهمم از این چیزا نمیخواد در همین فارسی خودت بگو ترکی خودت بگو به زبان این واجباتشو ورده داری قرآن رسولی کوزن رو ترچی بگیم فایده نداره باید عربی گفته بشه تو این واجبات تو این اجزای واجب خب و ترتیب و بینن اجزای چماز رو کرد اول همد بعد سنا بعد سلوات بعد وزبه به همین ترتیب چه گفتیم ترتیب رو به هم نزنید ول موالات من ترم قبل خیلی توضیح دادم ترتیب و موالات دوتاست موالات یعنی پشتر هم خطیب نره مثلا الحمدلله بگه بعد بگه آقایون چند لحظه واسه من یه چای بخورم برگردم اون نمیشه مووالاتو به هم زدی بعد چای حساب حالا دیگه تو مثال ملاقشه نکن دیگه شما یه مثال پشت مثلا چای گنده بخوره یا یه فلان اینجوری دیامو الخطيبه مع القدره خطیب هم وایسه هر چی میخواد باشه نگا ما شنمون اینو چه باید بشینیم نگا شما باید وایسه مر قدره مگه اینکه چلاق باشی اون موقع شهنت اینه که ابن نظر بشین والا این قدرت داری باید وایسی ول جلوس و بینه همه دیده باشید بین خطبه ها میشینند بعد پا میشن اون واجبه مستحبم نیست پس وقتی وقت امام جمعه یادش رفت بگید ها نشستی ها بشین و اسماهو الادد المعتبره اسم در مقابل اسغائه اسغا یعنی خوب گوش کن اسماع یعنی به گوشش برسون خطیب باید اسماع کنه شنوندگان هم باید اسغا کنند اسما بشنوانان چی میگیم بشنوانانت نداریم این باید رو نداریم برسانند صداشو برسونه به چند نفر ببینید مثلا فرض کنید الان یه نماز جمعه داریم اینجا ده هزار نفر نشستن منم خطیبم بعد یه جوری آروم خود رو بگم که بگم این ای چیزی همین ای دم دستم هم نشسته این جلو نشسته به اون بگم بعضی وقتا دیدی تو سخنرانی یا تو کلاس و اینا بقیه انگار نیستن یه دفعه خطیب و داره با همین جلوی یه صحبت می‌کنه اون <تصال> <تصال> نمیشه این به یه نفر نمیشه حداقل باید به چه یا 6 نفر برسونه <تصال> ها باید برسونه صداشو چرا چهار یا 6 گفتم علتش اینه در نماز عدد معتبر گفتن پنج یا هفت نفره چه یکیش امامه خب اگه پنج نفر یکیش امامه یعنی اون چهار نفر باید برسونه یا اگر هفت یکیش امامه اون 6 نفر باید برسونه عدد معتبر پس روش بنویسید 4 یا 6 نفری چه معتبر هست و کمتر از اون نمیشه حالا این ور داره با یکی از این جلوی یا هی آروم بگید آره میگم این اسرائیل فلان و اینها تو با بقیه نشنون این خراب میشه و و منال الحدث و الخبث آقا جان این تقسیم رو داشته باشید حالا بنویسیدم بعد نیست یه جمعندی باشید ببینید عدم تهارت یا حدث یا خبث. از حدث یا از خبث هدهس یا اکبره یا اصغره هدهس اکبر همون جنابته هدهس اصغر هم عدم وضوعه از هم اینه که بدن یا لباسش نجس باشه خونی باشه بولی باشه حالا اینجا میگه که واجبه است خطیب در خطبه ها تاهر باشد از هدهس یعنی جنوب نیادی وقت خطابه بخونه یا بدون وضوع نیاد البته این رو داشته باشید خطیب ممکنه با امام جدا باشن یعنی این افراد خطیب باشه بعد وقتی تموم شد امام نماز رو بخونه ممکنه آره امام نمازا نمازا بخونه. خب امام که باید تاهر باشه ولی خطیب هم واجبه نمیشه. نمیشه. نمیشه. نمیشه. یا بگیم خطیب بدون تهارت خطبه بخونه بگه حالا من خطبه رو میخونم بعدش یه وضوع میگیریم دیگه نمیشه همونجا باید داشته باشه شاید از همون جا بفتن که واجب تهارت داشته باشه چون جای اون خطباز هاره خب البته اینم اختلافیه چون به نظرم بعضی ها اون دو خطبه رو جایگوزین دو رکت نمیدونن بنظرم اینجوری هست شاید از اونجا نشاد گرفته اختلافیه پس این تهارت داشتن و سطر, سطر. روش بنویسی سطر واجب در سالات سطر واجب در سلات چقدر بود؟ برای مرد همون شرط عورت های این بود دیگه پس خطیب یه وقت بدون ستر عورت نیادیم که خطبه خوندنش مشه. <تصفيق> اینا من بارها گفتم اینا با فقه قدیم اینا الان جا داره ها ولی الان اینو بین مردم بگیم میخندم بگید آقا مثلا بگید تو مسجد بگید که آقا شرط امام جمعه این است که عورتش رو ستر کنه بعد بیا خطبه بخونه. خب مردم می‌خندن دیگه این مال الان جا نداره. قدیما نبود لباس مباس نبود از این جهت لذا اینا الان اگر احکام میگید به مردم نگید فقه میخونیم ما احکام جدا فقه جدا تو فقه باید همش رو بخونیم تو احکام نگید به مردم اینا زشته لذا الان تو بین نماز هم میان میگن بعضی از احکام ماله قدیماست میگه اگر لباس نداشتی نماز اوریان خواستی بخونی؟ چه جوری بخونید مثلا دست تو کجا بذار موقع رکوع چه جوری خم شو بابا اینا مالا الان نیست احکام نبوت بگیرین رو. خب و رو کل ذالک للاتباع همه اینها دلیلش اتباعه چون معصوم علیه السلام که نماز جمعه رو میگفت همه اینها رو داشت اتباه میکنیم پس ما هم باید داشته باشیم با اون تاثیر فرق اتبا و تأثیر. الان چیزی تو ذهن نمیشه که فرق داشته باشه ش... نمیگم هم نیستا یعنی نمیگم نیست شاید باشه ولی الان من تو ذهنم چیزی نیست انگار یکی و اسقا و من یوم و سماه آه کسانی که شنیدنشون ممکنه اینا هم واجب گوش کنن اسغا. گفتم اسم در مقابلش اسقا حالا اسقا من گوش کنید آقا جان وقتی خود بخونده میشه گوش کنید من المعمومین البته یه چیزی اینجا تذکر عرض کنم من خودم ندیدم از بعضی از اساتید این تذکر گفت اون اینه چه اون مقدار واجباتش ها که الان چموردیم براتون 5 تا اونها رو واجبه گوش کنه معمون بقیارش واجب پس اون الحمدلله و از بعد سوره و چی بود سنا اون 5 تا آره قبلش سنا اون 5 رو واجبه گوش کنی وقتی داره تحلیل سیاسی رو اینا میگیره میگم چه دیگه میگه اونها رو لازم نیست. از از از از از از سکوت چی سکوت؟ دیگه یعنی چی سکوت؟ کوچک نه؟ یعنی سکوت کنه دیگه؟ نه معضلی در در در که درون این فنشته که کوچک و بعد می‌شنم تحلیل سیاسی کنه یعنی سکوت میگه آره واجبه. متأخه اینچه حالا من هر فیلم کوشم بکنم، بکنم این تو اون واجبه. ولی ترکل کلام اینم انگار تو همون واجبات هست این انگار این اینم تو همون داره و ترکل کلامه البته خب چراحت داره دیگه اه. اولا چراحت داره ثانی هم حق بزنی اونجا مامورا میدازن پیرون مسئولایی که اونجا هستن ترکل کلامه مطلقاً یه لحظه من نگاه کنید. واجب است در, نما... در خطبه های نماز جمعه حرف زده نمشه مطلقا چی فهمیدید از مطلقاً؟ یعنی کلمه حتی یک کلمه چه امام چه معمع دیگه این مطلقاً چون توضیح مطلقاً کلام شما برداشت کردم چه تو پنجمته باشه تو مثلا تحلیل اضافی باشه اینش اش کلام شما برداشت کردم قبل قبل رو خب, نه, نه, خب نه, نه قبل و بعد منو نه, نه, نه, من نه قبل و بعد شهید سانی رو ببینید شهید, شهید سانی میگه تا اینجا که گفتم حالا کلامی هم در کار نباشد مطلقاً و چون توضیح نداده منظورش چیه یه خود این ماجش اختلاف داره این مطلقاً یعنی چی همچنه که رفاقا گفتن یکیشینه امام و معموم خب اون وقت صحبت سرینه امام کلام نگه یعنی چی که امام بیاد اونجا نگاه کنه <تصفح> اونجا مجبور شدن اینجا توضع بدن یعنی امام حرف اضافی نزنه مثلا بین خطبه ها بگی که یه دفعه که ولی خودمون این عجب ستونایی برای این مسجد جامعه زده شده اینا خب این نه اینو نباید یا به که آره دیشب یه جایی بودیم سیر خوردیم میخورده بوی سیر دهنم بباشردیم اینجوری نه اینا نباشیم ترشور کلاگیم امام اینجوری معموم هم که اصلا حرف رنزنه واجبه اما اون دوبامی رو گفتی دوبامیش چی بود که حتی یک کلمه هم حرف رنزنه مطلقم اینا دویه آره دیگه معمومی شه فقط اون وقت. حالا یه نفرم اینو زده بود یکی از معشین که سواء سمعوا او اعلموا و معمومین چه خطبه رو بشنون چه نشنون نباید حرف بزن چون ممکنه یه معموم دوره نمیشنه قدیما بلندگو هم نبود که میو خب حالا که نمیشنن بیا صبحتو خودمون بکن تا رستانی بیا یه بحث فقی داشته باشیم مقایسه فقی‌مون رو انجام بدیم اونم بعد این نمن میشن من فکر کنم این معترض بعد نیست چه بشنود چه نشنود ما چه به نظرم این مطلقا بهتر بود که. معموم چه بشنود چه نشنود باید سکوت کنه خیلی خوب خیلی برای تموم شد درسته سی و هفت دیگه بریم کار باید گفتم دیگه اینو گفتم بعضی یا گفتن که اینا منظور تو اون واجبات پس تو اون موقعی چه واجبات رو میگه شما باید گوش ک و حرف هم نزنی. ولی تو بقیه جاهاش حرف زدن مک میشه دیگه اون موقع اینجوری بگیم این مط هم آقای نقل رو، با این توضیح که آخرش گفتم انگار همینه. یعنی میگه آقا ببینید خیلی جالب شد. میگه معمومین گوشکن وقتی میتونن گوشکنن، گوش کنن گوش ولی کلام اصلا حرف نزنن چه بشنمن چه نشنمن پس این مطلقاً همونه آره آره چه ممکن باشد چه نباشد بشنوه چه نشنوه حرف نباید بذار این بهتره این خوبه فکر کنم این از زبده نوشتن زبده هواشیش خیلی هواشی خوبیه ازش استفاده کنم این خوبه آره همین خوبه اون امام و معمومینا رو بذاری کنار این بهتره خیلی خوب سلامت <العومت> <العومت> <العومت> <العومت> <العومت> <العومت>